روزنامه روزانه ای کشتی درست بیرون آستانه ای در افتاده بود. روزنامه یک برگ کاغذ براق بود که مطالب در یک رویش چاپ شده بود. تدی روزنامه را رو برداشت، شروع به خواندن کرد و در راهروی طولانی کشتی به راه افتاد. از طرف روبرو زنی تنومند و موبور که یونیفرم آهار زده ای پوشیده بود و گلدان گل سرخ بلندی توی دستش بود میآمد. از کنار تدی که میگذشت دست چپش را پیش آورد. به سر تدی کشید و گفت انگار اصلاح سر دیر شده تدی بی اراده سرش را رو از روی روزنامه بلند کرد اما زن گذشته بود و تدی سرش را برنگرداند به خواندن ادامه داد در انتهای راهرو جلوی تابلو نقاشی ژرژ قدی 18 ها که بالای پاگرد پلکان دیده میشد روزنامه کشتی را رو چارتا کرد و توی جیب پشتش گذاشت سپس از پله های پهن کوتا و مفروش که به عرشه اصلی در طبقه بالا می رسید بالا رفت. نرده پلکان را محکم گرفته بود و همهی تنش را به آن تکیه داده بود و دو پله یکی اما آهسته طوری بالا میرفت که انگار در نظر او مثل خیلی از بچه ها بالا رفتن از پلکان نوعی بازی لذت بخش است. به پاگرد عرشه اصلی که رسید یک راست به طرف میز حسابدار کشتی رفت که در آن لحظه دختر زیبایی با لباس نیروی دریایی پشتش نشسته بود. دختر سرگرم منگنه کردن چند بر کاغذ ماشین شده بود تدی از او پرسید. میخواستم ببینم بازی امروز کی شروع میشه چی فرمودین؟ گفتم میخواستم ببینم بازی امروز کی شروع میشه دختر با لوندی لبخندی زد و گفت کدوم بازی جونم؟ راستش هم بازی و کلمه ها که دیروز و پیروز میکردن که از آدم میخوان کلمه های افتاده رو پیدا کنه انگار کارای اون بازی رو خود شما روبهرا میکنین دختر که سه برگ کاغذ را زیر منگنه دستگاه دوخت میگذاشت دست نگه داشت و گفت آها خیال می کنم فردا بعد از ظهر باشه، خیال می حدود ساعت چهار باشه، یکیم برای تو زیاد نیست جونم؟ تدی گفت خیر زیاد نیست، متشکرم چکرم، براه افتاد که برود یه دقیقه سب کن جونم، اسم چیه؟ تدی گفت تیودر مکاردل، اسم شما چیه؟ دختر لبخند زنان گفت اسم من اسم من ناوبان دوم متیوسانه تدی به او که روی دسته ماشین دوخت فشار می آورد نگاه کرد و گفت میدونستم که ناف دومین ومین اینکه یقین ندارم اما اینو از من داشته باشین وقتی کسی در میاد میپرسه اسمتون چیه درسته حسابی خودتونو معرفی کنی. مثلا بگین جین متیوسان یا فیلیس متیوسان یا هر اسم دیگه ای اهه جدی؟ تدی گفت همونطور که گفتم گمون میکنم یقین ندارم البته اگه آدم لباس نظامی تنش باشه موضوع فرق میکنه به هر حال از خبری که بهم دادین متشکرم خداحافظ برگشت و روح پلکان را به طرف عرشه گردشگاه در پیش گرفت و بالا رفت پله ها را دوباره دو دوتا یکی پیمود اما این بار انگار کمی عجله داشت پس از آنکه کمی همه جا را دید زد بوپه را در عرشه ورزشگاه پیدا کرد. بوپر در فضای آفتابی نشسته بود که نسبتا جای دنجی بود میان دو میدان تنیس که کسی تویشان بازی نمی کرد. او که پشت به آفتاب چون مزده زده بود و نسیم ملایمی موهای ابریشمی و بورش را به بازی گرفته بود دوازده یا چهارده ماره چوبی سیاه و سفید را روی هم در دو ستون یکی سفید و دیگری سیاه میچید. پسر کوچکی با لباس نازک نخی نزدیک او در طرف راست. سرگرم تماشای کارهایش بود بوپر به برادرش که به او نزدیک میشد آمران گفت نگاه کن و روی زمین پهن شد و هر دو ستون مهره را با دستهایش بقر کرد تا هنرش را عرضه کند و نشان بدهد که مهرها با همه چیزهای توی کشتی فرق دارند سپس رو به دوستش کرد و با دشمنی گفت مایرا ما تو سایه می‌کنی نمیذاری داداشم ببینه هیکل قناستو بکش کنار چشمهایش را بست، دستهایش را بر سینه قفل کرد و با حالتی ریاضت کشانه منتظرمان تا وقتی که مایرون از جایش تکان خورد. تدی کنار دو ستون مهره ایستاد و با تحسین به آنها چشم دوخت و گفت خیلی محشره چقدر قرینن. بوپر به مایرون اشاره کرد و گفت این بابا حتی اسم تخت نرد به گوشش نخورده. حتی تخت نرد توی دم و دستگاشون به هم نمیرسه. تدی با نگاهی به مایرون انداخت و به بوپر گفت ببین دوربین کجاست بابا همین الان اونو میخواد بوپر به تدی گفت حتی خونهشون تو نیویورک نیست باباش مرده توی کره کشته شده رویش را به مایرون کرد و گفت مگه نه؟ و بدون آنکه منتظر جواب بشود گفت حالا اگه مامانش هم بمیره اون وقت یتیم میشه حتی اینو هم سرش نمیشه مایرون را نگاه کرد و گفت سرت میشه؟ مایرون بیان که آره یا نبگوید دست را بر سینش تا کرد. بوپر به او گفت تو خنگترین بچه هستی که تو عمرم دیدم. تو خنگترین بچه این اقیانوسی. اینو میدونی؟ تدی گفت خنگ نیست. مایرون تو خنگ نیستی. رویش را به خواهرش کرد و گفت یه دقیقه به حرفم گوش دوربین کجاست فوری باید بدیش به من کجاست بوپر که به هیچ طرفی اشاره نمی کرد گفت اونجاست سپس دو ستون مهره چوبی را به طرف خودش کشید و گفت آه. چیزی که لازم داری یه جفت قولن تا بیان انقدر تخت نرد بازی کنن که خسته بشن اون وقت از دودکشا برن بالا و اینها رو به طرف آدمها پرتاب کنن تا نفلشن به مایرون نگاهی انداخت و با زیرکی گفت اونا میتونن پدر مادرتو تو بکوشن اگه کشته نشدن میدونی چیکار میتونی بکنی میتونی بری یکم سم بزنی به ریشه گل ختمی و بهشون بخورونی دوربین لایکا در فاصله سیمتری نزدیک نرده های سفید که عرشه ورزشگار را می میکرد دیده میشد از پهلو توی مجرای آب قرار داشت تدی کنار دوربین رفت بند چرمی را گرفت و از گردنش آویخت سپس بیدرنگ حلقه را از سر بیرون آورد به طرف بوپر دراز کرد و گفت بوپر یه کاری بر من میکنی خواهش میکنم تو بگی ببرش ساعت ده وقت نوشتن خاطرات هم رسیده من کار دارم تدی گفت اصلا مامان الان بات کار داره دروغ میگی تدی گفت دروغ نمیگم بات کار داره الان که میری پایین اینو هم بگیر همرات ببر زود باش دیگه بوپر بوپر پرسید چی کارم داره کارم داره که داشته باشه ناگهان به پشت دست مایرون که دراز کرده بود تو اولین مهره قرمز را بردارد زد و گفت دست خر تدی بند چرمی لایکا را به گردن خواهرش آویخت و گفت هر کاری میگم باید بکنی همین الان اینو میبری میدی به بابا بعد کنار استخ میبینمت درست سر ساعت 10 میام کنار استخ پیشت میام پشت دری که لباساتو عوض میکنی زود باش برو این را به ارشے سه میرسه یادت باشه از این را زودتر میرسی سپس برگشت و رفت بوپر پشت سرش داد زد مردش رو ببرن مردشوی همه آدمای اقیانوس رو ببرن.